بسم الله الرحمن الرحیم کلاس استاد عرب صالحی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبینا ابي القاسم المصطفى محمد الله ما آله االكوين العطرين سيما بقيه الله على أول الصبح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا باينا حتى تشكنه هو الله و وتتم صحه في بهمن و رأفته و رحمته و دعائه و خیره انا نلوي حسات من رحمتك و فوزا انداك صدای من مفهوم هست خودم خیلی متوجه نشدم متوجه مهم شو بله. خب بحثی که توی وقت کوتاه قرار شد ما تقدیم اساتید بزرگوار بکنیم بحث فلسفه و اصول و روش ناسی مقدمتا مقدمت از کنم بحث فلسفه های مضاف خب یکی دو دهه است به همدلال تو حوضه های را افتاده از بحث های جامانده بود که هنوزم که هنوزه به من به اهمیتش نه حوضه ها نه دانشگاه ها و عظمتش پی نبودن درگی دیداری با حضرت الله احرافی و بعضی از علم آبندم توفیلی اونتون جلسه بودم عرض کردم که با پرداختن به فلسفه های مصاف میشه 70 درصد شبهات در حوزه دین رو پاسخ داد نه که فلسفه های فقط به درد پاسخ و شبهات رو اما من زیاد داره ولی الان که کشورای اسلامی و بسیاری از ذهنها مشغول شبهات برای پاسخ به شبهات یکی از راهکارهای اساسی پرداختن به فلسفه‌های موزا. یک زمانی ما تو پژوهشکده فرهنگ یه همایش گذاشتیم فلسفه اصول. بعد علیه ما اونقدر پخش کردن که اینا میخوان فلسفه رو را رایج کنن و فلان. حال که یه بحثه، بحث فلسفه یه مجلق فرزنده مصطلح بحث دیگر است. شما بزرگان ما که صاحب اثر بودن اگر در زندگیشون نگاه کنید مثل الله <تصفح> میگه مصفح رزوان الله علیه استاد متحری یکی از رموز موفقیتشون ارز کردم یکی یکی از رموز موفقیتشون بود که پرداختم مسائل فلسفه های مصاف همه دیگری ما دو سال پیش پششگاه گذاشتیم حدود 14 فلسفه مضاف در اونجا کار کردیم که علامه مصباح به صورت تخصصی مورد کردن. فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه جامعه شناسی فلسفه سیاست. این که علامه مصباح موفر بود چون هر داخت به فلسفه های مزاف و فلسفه مزاف پاسخگوی بسیاری از شبهات روز بود. خب قرم یا تو تو علوم خودشون بیشتر از ما کار توی مباحث ولی تو کشور های اسلامی و مخصوصا حوضای علمی ما تقریباً بحثای فلسفه علم میشه گفت یه جوری معذور بود به زمان آیا اطلاع عمالی لاده میخواست فلسفه اصول بگه جورت نکر اسم کلاسی بذاره فلسفه اصول بحث مبادی اصول 7-8 سال اصول بود که ما منجا استفاده میکردیم بعدها که شروع که دلت کتاباشه چاپ کنه اسمش رو بداشت فلسطه اصول واقعا بس بحثی بسیار بسیار مفید و لازم است مشکل جهان اسلام امروز روز صرفا ندانسته نحکام شرعی نیست ندانسته نحکام فیدهی نیست این رو اکسرم می میدونم خیلی بخوانم بدونم راحت امروز دیگه اینترنت و همش دست از مراجع میکنم میدونم مشکل اصلیه تو اون فلسفه این هست. تو دستگیری که بار سال کردند زیر 18 سال 15 درصدشون ملحد بودن. 15 درصد زیر 18 سال. سال گذشته من کسال خوندم تو جرائده آمده بود که آمریکا تو عراق 5 میلیارد و 800 میلیون دلار خرج تربیج همچسپاسی تو عراق کرد. پجوشگران عراقی مرتب میان ایران، پجوشگاه ما که چند بارو مدن و پناه وردن به پجوشگاه قوم که دو تا جریان داره عراق رو در به داد عراقی ها یکی جریان الحاد جدید که کل دانشگاه عراق داره میگیره ملحد داره میشه یکی جریان دیگران دیگراندیش که تو ایران که دوهای روشنفکی رای ما مستهد شلستری آیست روشن ملکیان و دیگران ما اله ماشاءالله تو عراق ترجمه شده نزیگای حرم میتوشن خواه این همهش بحثای فلسفه دین دیگه فقط در یک مورد فلسفه دین که یکی از فلسفه های مضافه پششگاه مطالعه کتاب 20 کتاب روشته هر هم معتقده 20% کار انجام داده درصدش مونده یک فلسفه مضافه یکی از فلسفه های فلسفه دینه که مهمتری اونقدر مسائل داره بهشت به پردازی بسیار زو اثر و عمر آدمان طلاف نمیشه شما مثلا پرز بگیم کار جایتلا و مصباح یا استاد متحرکه مقایستی کنید پرز ریال همه ایمان رسیدیم به جایی که رساله هم دادیم باشه تو من مازا مگر اینکه که بحث رساله بیاد تو بحثایی فقه های جدید فقه محاصف خدمت شما هستن و فقه رزانساز و که شما الحمدلله خاش وقتی تا به سفر آخری که به عرب داشتیم ایام هربه واشنطن پیدا بود حتی جاهونایی که تو می بدن قیافه ها معلوم بود که اون دلارهایی که امریکا خرج کرده از دلش داغشه واشنطن قیافه بعدشون بعدشو دخترانه بود بعد شو سرد سر, سر. سر بود و عطای شیرش اینا رو نمیشه به کام فقه جواب داد اون فلسفه فقه که چون نوابت ما دارن تو فقه از قدیم کار کردن تو اصول کار کردن و لازم هم هست فقه و اصول باید مرکزیت به فقه باقی بمونه ولی اینو بدونید که با این فقه و اصول نمیتوان این مسائل رو پاسخت. همین نوابت بیان تو فلسفه تفکر. فلسفه, فلسفه ایجاب چیه؟ هست؟ اون متحرک کتابه. فلسفه این نفقه. این نفقه که اسلام واجب کرده که باید نفقه چیو بده این کسی به بنویسه بعد مقایسه کنه با کشورهای دیگه نتایجشام ببینه کارکردشام ببینه کارکرده های تک تک احکام فقهی در دنیای مدرم اینو هیچ که کار نکرده جاشم خلویه شما تک تک این احکام میتونی موضوع رسال قرار بدید موضوع تحقیق قرار بدید کارم نشده و تصدیم و بحث کارکرده های مسائل دینی جزی مهمترین مسائل فلسفه دید. حالا توی این خود فلسفه دین و فلسفه, فلسفه مزاق بعده بخواست صحبت کنم چند جلسه ای میشه قرار در هر صورت بحث فمصفه های از مهمترین مواسته الحمدلی ریاست بوزه من طول عراقی بسیار باهوش و زیرکی مدت هاست خوده چون این پروژه رو داره دنبال میکنه که این محصه رو مفصل راه بریست حالا در خصوص فمصفه اصول ما فرق مرار شد بحث من میذارم که به پردوسیه یک نکته رو بگم اگر اوسه بخواد به فلسفای موساو به صورت مشروح بپردازه حداقلش 100000 طلبه در خارج خونده که تمام فلسفای موساو بهش پرداخته بشه به نوشته شده بشه تحقیق بشه و این زمین مونده ای کاری نیست که شده باشه یه دفعه من عثایی میکنم من امروز سرانام گفتم میخوام یه بحث علمی دقیق دوی. کتاب روش شناسی خب خب مقدر بکنم چیزی که شما نبیاد تو برسه اینجا من میخوام جهتگیری ها روشن کنم یه آیه موقعیم خدا حفظش کنه در دانشمند و معاون پجوش و خوزی یه دفعه من گفتم که من تو یک ساعت برای شما سی هزار موضوع رسال سطح چار میدم یه جور نگاه من جد نگاه خلاصه آقلندر فلایی که ترجمه که میشم چیزی گفت تره تو بیام گفتم که دنبال کردی درمی نمیستم ولی دنبال لنکنی نه به رفت و کسی هم دنبال لنکنی چیزی نگفتی حالا این جهتگیری که من روز قدمت شما خوام بگم جهتگیری های کارایی که مونده فلسفه حصولم است هم به همون یا یعنی شبه اندازی یا به فلسفه دین نیست چون یک گوشه کچک هست و باست دینی هست ولی بسیار بسیار باهمیتی ما، بعضیاً مباحث فلسفه اصول داخل کتاب اصول هم بردن. خیلی اون بحثایی که تو کتاب اصول هست مربوط به فلسفه اصولی. ولی خیلی از مسائل فلسفه اصول هم که به شدت در روش شناسی و اجتهاد تأثیر می‌ذاره. من اینکه وقت شما رو کمتر طلب کنم، مثال‌ها رو میزنم که بس عینی بشه بدونید چقدر این مباحث مهم یکی از مقاصد بسیار بسیار مهمه، فلسفه علم. بحث تاریخ تطور مسائل علم این مساله فلسفه علمی است. تاریخ تطور مسائل اگه فقط تاریخ مسائل باشد این فلسفه علم نیست فلسفه اصول است این شما تاریخ مسائل اصول رو میشه داره تو معرفت اصول که اینم نداریم همیش هم نداریم اما تاریخ تطور مسائل علم و اصول مثلا تو اصول مسئله دانون مولوی ارشادی بحث های سنتی رو اول مثال بزنم مولوی ارشادی این مولوی ارشادی چیه؟ صفات حکمه، صفات عوامر نواهیه صفات هر کدوم باشه از ابتداد آنها که تطوراتی از این رویده تاریف ایش چجوری بوده؟ تو اهل سنت چی میگن؟ اصولین شیعه چی میگن؟ این تطورات که پیدا شده کی بوده و چرا؟ چرا به شیخ انصاری که رسید معنای مولوی شدی تقلیف کرد و آیا چیزی چیز که شیخ انصاری فرمود درست یا درست نیست آیا میشه گفت اطی الله رسول از مقام مولویت و خدا صادر نشده به عوامر است؟ آیا تعریف به اینکه مولویه حتما اقاب و سواب جداگانه داره درست یا نادرست یه بحث بسیار مفصل حداقل همین بحث مولوی شدی یکی دو دوتونساله میخواد و باید کار بشه حالا ببینیم از اصول چند تا مسئله داره؟ کسی اصلا احسا کرده مسئله اصول چند تاست؟ مخیلی که دیگه درسته، تک تک اینها موضوع رساله سطح چهار بشه من پیشنهاد دادم زمان کسی عمل نکرد که مثلا یه لوجیک، معصق امام رضا بانی این مسئله بشه زیر نظر مثلا 20 نفر استاد درس مبرست، استاد درس خارج بیان تمام مسائل اصولی رو تاریخ تطور شما این تطور رو دارن تأکیم بکنن صفه تاریخ نه پایده نداره تاریخ تطور مسائل از ابتدا تا انتها بیان به هر مقتعی که مسئله تطور و دیگرگونه بیده کرده چرایی خواستایش رو بگه و برای چی بوده و فواهدش چیه و آیا درست یا ندرست همه مسائل اصولی اینطور این بشه بعد یک مجموعه حد صد جدی پیدا میشه درود اصول، بعد کسی که میخواد درس خارج میگه، هر مسئله میخواد خوبگه تاریخ از ازجا پیدا میکنن منو تو جلسه مل. اگر جلسه و اصول خارج و اصول ما اینجوری شد مشتعدبتشه. الان شما یه جلسه برنا مثال بزن که میشه جلسه درس خارج. که هر مسئله که میگهد تاریخ تت کل مسله میشه. داشتیم بعض اینمراج بزرگ که از ابتداد انتفافت، تاریخشونی گفتن ولی تطور مسائل که چرا اینجوری شد برای چی درست یا نادرست پر کمتر گفته میشه اگر انسان استاد درس خارجی اینجوری پیدا کنه چه فیخ چه اصول تاریخ تطور گفته بشه من به جرأت میگم پنج ساله اون شاگرد میشه مجد حد. ولی نیست اینجوری اکثر درس های خارجی ما یکی دوست تغییراتی دارند میگن که مععلان 4 5 تا بیشتر انسای مول اون تقریرات میشرخه میگن دو ستان یا efficient نمیکنن درست میشن میگن بس اون که در طراز شیخ انصاری برای این زمان مجتهدی که در طراز باشه برای این زمان کم پیدا میشه دیگه تعارف که, که نداره خب تو همین بحث هزار تا طلبه مشغول چه و بعد اون مجموعه که واقعا زی نظر 20 تا ازدار دستارش تدمید شده، یکسان سازی شده، اینو به جامعه علمی عرضه بکنیم. اگه داریم، بگید من چون اطلاعات تا اونجا که میدونم نداریم همچی چیز که کار شده باشه. این تو مسائل سنتیه، اصول سنتی خودمون که زمین مونده. و چقدر موثر و در اشتحاده. چقدر تأثیر میذاره در اشتحاده و قطعای مشترک که اصلا رأی اصولی که این مشتهد بخواد صادر بکنه. حالا شما همین مساله رو اصخایی مقرمی دیگه مربوطه و برساند ببرید تو فقه تاریخ تطور مسال فقه ما تو معارف فقه تازه حالا به همت آقا داره تدویم میشه که ابتدازی نظر مرحب مایت الله شاوردی و داله داره ادامه پیدا کنه تاریخ دارتون معارف که تاریخ فقه تاریخ مسال فقه ولی تاریخ تطور مسال فقه یکی یکی به شما یقین بدونیم. نخصد آن که در ساره از کامپیوتر از, از جمع کردن آرا آسان تره آدم وقتی سیر و مشکل کلی مطلب گیرش میاد و قطعا اون تو اجتهادش، تو فتحاش و تو نظر اصولی و فقیش تأثیر خواهده شد. خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. خب علمای بزرگ ما بعضا خب قدیمون این وسایل نبود میرفتم تو درس خارجشون مثلا آقای بروجه دیرونجوری نرمی کنن که از ارتداطم هم تا همه آرار نگو به بعضن تطوراتم فعلا اینجوری نیست در سفارج اینکه ما این که اینجوری نیست ندیجش یه نهوی من یه مساهدان دو, دو سال پیش گفتم خطر قطع ارتباط با تراس و تراس علمی داره قطع میشه تقرار ارتباط به خیلی از کتاب های مراجعه نمیشه گاهی وقتای تقریراتی هست که اصلا تو بحث بحث هایی فقیق نمیشه آدم سراغش میلیم این چه مطالبه امین اونجا وجود داشته این یه بحث هستم. خدمت شما بگم در خصوص بحث فلسفی اصولی که اینجاش اون خالی دو زمان. تو تحقیقات این خالیه و همین الان نزدیک که هزار تا موضوع حداقل هزار تا موضوع اصولی اینجا پیشنهاد شد به شما که میشه روش کار کرد دوستانی هم که دو فضای مجازی دارم ستاره میشنم یا بعد میشنم من روی فقط من دارم فایل باز میکنم امروز بحث علمی که واقعی به نتیجه برسید نیست و به خودم اینا مهمتر از یک بحث علمی فر مثلا اصولی بخواست اینجا مطرح بکنم مثال دومی که اینجا میتونیم مطرح بکنیم بحث ماهیت شناسی از از موضوعات است. خب مستخصر فلسفه اصول از موضوع اصول بحث میکنه قایتش، اهدافش روشش، منابعش دل خب بعضی مثال تو اصول بحث شده به جمله ماهیت حکم مثلا ولی خب تو فلسفه اصوله ماهیت حکم چی؟ آیا حکم است، ای اعتباریست؟ است؟ این اختلافی که بین اصولی نماز میگن انتظایی بعضی من اعتباری بعضی میگن واقعی مال کجاست؟ آیا مغلطه اینجا قفلتی صورت گرفته؟ آیا بعضیشون حکم که میگن حکم مستری رو معنا کردن یا بعضیشون حکم اسم مستری رو معناه کردن نتیجه ی حکم اونها چیزایی حالا که آرام میشه جمع کرد خیلی نتایج خوب میشه گرفت بعد سراخ تک تک احکام حکم حکومتی معایدش چیه؟ کلی بحثه بودی یعنی قطعا دو, دو سه تا سه رساله میشه نویشتن ماهیت حکم حکومتی بعد برای دلا به شناخت من یه مقاله کوچولو 24 5 صفحه ای تو همین ماهیت حکم حکومتی و برایان دلا به در اونجا ما آخرش رسیدیم به اینجا که اون حکم حکومتی اونجایی که حاکم به ما و حاکم میخواد حکم کنه بله مسادر حکی بشه که مصلحت چیه تمامش استنباطیش اما اونجایی که میخواد حکم صادر کنه مسباق مصلحت چیز اونجا که استنباطی نیست و راهش راههای چه اونجا سنجو که به قیاس استحسان عمل کردن میشه بگه میشه اگه اوقلا عمل بکنن چون اونجا اولا میشه در صورت اینا ماهیت شناسی بسیاری از احکام چون خب تو خود اصولو بحث نمیشه اصول بعد یه تعریف است شار کلامی ما کلامی ها که ماهیت, ماهیت تعریف حکم حکومت چی شما ببینید باز کنید اینا مال فلسفه اصول و دقیقا اونجا که میگه حالا چیکار کنین حکم حکومتی استنوادی هست یا نیست اگه هست چشوری آی استنوادی مصطلحی یا نیست روشش متفاوت متقابط شد حالا تک تک احکامی که اونجا از همینطور محایتش رو بشناسی بعدش ورود میکنی به روش شناسیش. این هم یه بحث فقط منان نمونه ذکر کردم یکی از مباحث مهم به فلسفه اصول موسخایم کنم من سریع رد میشم چون وقت کمه و میخوام قول مروف یه فعالهای خاصی یک جلدگیرهای خاص تا تونجه که بدردتون بخوره شاید ابتا خیلی شمیدید من مدعی نیستم که بحثمان بدرد بخوره هست حالا تکرانشم چرا ترابطی یک علم با علوم دیگر از مسائل مهم فلسفه علم در فلسفه اصولم تأثیر و تأثیرات علم اصول و, و رابطهش با سایر علوم این از مواس بسیار بسیار مهم من یکی دوتا مثال بزنم رابطه علم اصول با و دانش علم که از دانش های جدیده اون بحث قبلی خود سنتی در اون بحث جدید ما دو جور میتونیم با این مباحث برخورد بکنیم که هر دو جورم برخورد شده خب یکی از علما من تو جلسات نبودم بودم اساتی بودم بعد برآمده تند گفتن که هیچ رابطه‌ای بین علم فرمود که هیچ رابطه‌ای به علم و اصول و هرمنوتیک نیست بی خودم خودتون رو معطل این بحثای غربی نکنید چرا استدلال دقت کنید چون موضوع علم و حجته موضوع دانش هرمنوتیک فالح اصولی بخواد حجت پیدا کنه اولا به صد حالا اون واقعاً چیه کار نداره تلاششو میکنه پیدا کرد پیدا کرد پیدا نشدم پیدا نشد. اصولی میخواد حجت بر فعل خودش و بر فعل مکلف پیدا بکند در حال که موضوع ایرونتیک فهمه خب دو تا دانش ما داریم دو تا موضوع متواهید دارن بنابراین موضوع که متواهید شد یک جرتبات این دو تا دانش ماست این میشه ساده سازی صورت مسته. که متاسبانه به بی شدت بین ما طلبه ها بی شدت بین ما طلبه ها اینو که میگم از زبان کسی بشتم که خودش حوزه وی دانشگاه رفته. از بیرون دانشگاه از بیرون حوزه هم حوزه را کرده و معتقده هیچ جایی به جای به گرد پای حوزه نبیسه. من از طلبه هایی که دانشگاه رفتم و سنتیترین طلبه ها هستم ولی اینو مسئله که من نمیگم نم ما معمولا با مساجد خیلی ابتدا ابتداست ساده سازی میکنیم بایی چی. از صدیم هم نمیدم از کجا اومده این از جایی که در تغور باید کرد که چرا و ذهن ما طلب این و از جایی رو هیچی حساب نمکنیم میذاریم کنار حتی تو مسائل سنتی. تو برانتز من یه مقاله در اندخواه اکمال می روشتم اولا تبدیل دارم این کتاب میشه. اونجا دیدم بعضی اشکالات که ما نما سنت کردند سنت یعنی یه مطلبی رو گفتم مثلا فخر رازی گفته بیست تا اشکار بشگردن. وقتی میری تو کتاب فخر رازم اون چیزی نیست. یعنی در این حق مثلا فردی که مسائل پیش پاوش داده رعایت نمیشه. حالا کار نداشت. پراندز بست. اینجور میشه ساده سازی. بله اون موضوعش فهمه یکی موضوعش خود دوتا موضوع متواینن پس ایش ارتباطی با هم ندارن. اصلا س یه بعد. یه جور بعده یه جور هم اون خیلی روشن فکر ما که میگم بابا اصلا اصول و ایت بشه و ارمونوتیک مهمه و بیاد اصول ما رو زیر رو کنه اونجوری هم داریم متاسفانه یه قشقی از طلبها خب هیچ کدومیش طوریش بریم وارد بحث بشیم نمی‌تونیم شه فکر یک آیا اگه دو تا علم موضوعش متواغم بود هیچ ارتلزومن هیچ ارتباطی با هم نداره چی این تلازم از کجا اومد دو تا علم توایون در موضوع دارن پسیش ارتباطی با هم ندارند. از کجا؟ خب ممکنه موضوع تاهیل داشته باشه ولی بعضی مسایلش با هم تن به به هم تاثیر و تاثر هم داشته باشه. علم پزشکی موضوعش بدن انسانه. علم فقه موضوعش فعل انسانه. این دو تا علم تاثیر و تأثیر بر هم ندارن. ببینید که امروز کاملا مثل روز روشن شده که چجوری میتونه هر دو تا دوام تاثیر بکنه؟ مسائل تجربی علوم تجربی جدید بسیارشون در فهم آیات قرآن محسدشون من نمیگم علامه تبا طب تبایی مرمو شهید سر علامه متحره استاد جوادی آمولی آیت الله از ما خویی بسیار از آلام که میشه از بسیار آونده های علم جدیدی و آیات قرآن درست بهمی استفاده کن آیات قرآن درست فهمی. اونقدر مهم بوده که شهید تو الفتا و الوازه یه پاراگراف میگه میگه امروز بهترین فرصت برای که از آورده های جدید علوم استفاده کنیم و معید بیاریم برای آیات قرآن بدون اینکه که هم کنیم قرآن بر معنی اشتباه از دو تا علم اگر تقاینه در موضوع داشتند لزومه به معنی که هیچ ارتباطی به تأثیر و تأثیر از زندان نیست شما فکر کنید تا شد تحت تا مثال میست مثال میتونید خواب بر فرس و این طور بپذیریم شده رفت آیا حجیت مبتنی بر فهم نیست یه مجتهد یه اصولی باباش در میاد خودا سی سال زحمت بیشه تا اینکه روایتو بفهمه تا برسد به حجت منابع خوب درک کنه عقب درست بکار میگیره روایتو درست بکار بکنه اصول استنباتو درست که کارید تا بفهمند و برسد به حجت. حالا یا آخرش بگید من از رواید چیزی دستگیرم نشد. مثلا برایت یا اهدیات جاریم بر یا هرچی. اصلا خودی یه حجیت مبتری برفهمه. یه پروسه طولانی از فهمید برسه تا انسان برسه به حجت. خب اگه حجیت مبتری بر هرمونی دید میاده همون چه که در زیر بنای حجیت رو بزنیم یه فهم جوری د حالا این که میگم ای که از علمای بزرگ خیلی روشنه این مطلب و حرمت من اونجا نبودم تا اینطوری خودی بعدم نیدمشون سه اصلا اصول فقه ها حداقل جلد اول کفایت الاصول که همیشه در مورد قواعد فهمه که مواضع انفاس قواعد همیشه در مورد فهم درس صحبت می‌کنه چطور میتونی بگیم اصول فقه بخ... اصلا کاری به فهم نداره سن تعریف اصول الان به القواعد الممهدل استنباد آخرش برای که برای اینکه بفهمین بعد از استنباد حجیت میاد این یه طرف قضیه که این برای بگاه بودی اما بریم تو خود دانش هرمونتیش من چون خودم رساله من بوده وارد این بحث شدم آسرای بکنم من تحرمه اگه سی چل باری هم تدریس داشتیم بحث هرمونتیگو تو خوب زبادن شد. ما حالا هرمونتیگ دو داشتیم دو روچاده اساسی تو هرولوژی که است غیر اون که اساسی با تو ای که ای که, ای که, که, که شناختی رو بسط میکنه و میذاره کنار هرولوژی فلسفی. اگر فلسفی اساسش رو انسان شناسی که هایدگر مثلا میگه بعد کاندلمن میاد توضیح میده اگر مبانی انسان شناختی فلسفی درست باشد نه قول پیغمبر حجته نه قول عبیر و نحیر و معصومین حجته نه قرآن حجته تمام اینا هست و اساس منابع ما کتاب و سنت دیگه ترین منابع ما کتاب و سنت اونا معتقدن که هر انسانی یه برهی زمانی زیر شرایط زمانی مکانی به دنیا میاد، انسان ذات سیار داره، جوهر ثابت نداره، دائم در تغییره، تغییراتش هم خیلیش دست خودش نیست، خیلیش هم از بیرون میشه و اینو ذاتی انسان هم. اصلا ما انسان ثابت نداره. بنابراین اولین، خودشون هم میگن اولین سمره هرمون که فلسطی، سقوط هر گونه اتوریته به قول خودشون، اقتدار و منجریتی. چه مرژهیت قرآن باشه؟ چه مرژهیت پیغمبر باشه؟ چه اهمیت چه مرژهیت مستره خودمون که مرژهیت حقیق باشه؟ خب کجای این بحثه باید بشه؟ اینجاست که فلسفه اصول اصولی که آقایی اصولی باید از این گردنه رفت بشید باید شبهات و گره هایی که هرموت که فلسفه انداخته باید رفت بشید الان چرا آقایی مجتعد شبستری میگه که؟ فتوای هیچ مجتهدی برای هیچ مجتهدی مجددی نیست. اخی علما و نوابق ما میشینن کنار وارد این بحثا نمیشن یکی مثلا علی مشتهد شمسطری به مجتهد میشه به فتاوای محمد مشتهد هنوز هنوز همین همونجاست ایشون در 15 سال پیش لباسش خودش برداشت 4 تا سال رفته و در هامبورگ آلمان اونجا اندیشاش خراب شد بعد لباس روحانیت خودش برداشت و مقاله نوشت قرائت نبوی از چا یه قران دیدگاه پیغمبر در مورد هستی و دنیا نه اینکه کلام خدا باشه پیغمبر اینجوری درک کرد خب حالا چیکار کنیم میگم حالا باید عقل خودمون ملاک قرار بدیم ببینیم که درسته اینکه پیغمبر گفت یا درست نیست آقای عبدالكریم سروش مشتاق شبستری بعضی روحانیون معممی که سروش‌های معمما ملکیان های محمد و مصطفى ملکیان محمد اینا الان برای ما دارم فتفا میدم و جمعون هرخواه اینا رو گوش نه نمجتهد مراجع اینا از هرمودی که فلسفه ایشون بشه درمون تأثیران مجتهد شده رضا میگم قرآن قابل نقده کلمات پیامبر قابل نقده اصخواه مکنم حیف این جلسات مقدسی کلماتی اینا توش ذکر بشه من به گوش خودم شنیدم از ملکیان که یک گذشت آن زمانی دنیای امروز توصیف داره یک گذشت آن زمانی که بگوییم فلان چیز درست است چون علی ابن ابن ابی طالبه است نه فلان چیز درست است چون عقل من میفهمد که درست است عقلی هم که اینو میگن عقل خود بنیاد غربیه یعنی هر چی این فهمید درسته نه فهمی بود کن بذاری کنارش دنبال اختصارا میگن قرآن تاریخمنده. ب عمر رو میگذاشتم این بحث های تاریخی و تاریخی نگریه و تاریخمدی با به خاطر اوران تاریخ مندقرران به درد زمان خودش میخوره قوله بیان برم همینطور الخر این یکی از ریش از نمیکنم همش یکی از ریشه هاش گفتمون بود که باید میده کنید که برداشتی از انسان دارن و از آگاهی و فهم انسان میگن فهم ضرورتاً تابع شرایط تاریخی دسته ما نیسته استفاهل شناسا نیست تاریخ به ما دیکته میکنه چه جوری بفهم تاریخ هم که میگیم تاریخ اصطلاح نیست به قول خودشون استیتس اوف اپس of اوضاع و احوالی که هم تو ذات ماست هم پیرامون ماست اینا در مورد پیغمبر همی هم همینطوره در مورد امیرالمؤمنین الهی همونجوریه ازا قرآن کتاب تاریخیست است است یعنی زایده شرايط تاریخی است و کارکرد و کاربردش هم برای به شرایط دیگه نمیخوره. شما حرفای این نقایی در اون تو زادی و این چقدر از دیم واقع میذارن؟ یا ذاتیاتش هاتش واقعیه باید بره نوت درصد آموزاهدین رو میگن عرزی. خب. وقتی آدم بره وارد بحث هرمودی بشه خب بشه کمکی به ما نمیکنه تو استنباد ولی ریشه منابع استنباطی ما داریم میزن خب بحث از منابع استمات هم تو کلام باید بحث بشه تو مبانی کلامی اصول فقه هم تو خود اصول باید بحث بشه دیگه تو فلسفه اصول این شبهات باید رفع بشه و این شبهات ذهن خیلی ها رو درگیر کرده سرانجام بعضی از طلبه ها این درگیر شده و اینا در آینده شما با مشتعلای اینجوری طرفیدون در آینده شما باید این مشتعلا سر کله بزنن اینا میام درس خارج میذارم والا فاجوا میذارم احمدی و تو توغوزم از ما گرچه ها ندارم و؟ با... ولی ما این جلو جلو اینا را آماده بشید بحث بحث بسیار مهمی وقتی قول پیغمبر اون جد نشد خب معلومه دیگه مرجعیت و فتحا و تقلید و اینا تماما از بین میره چون میگن این یه انسانی بود با شرایط خاص خودش اون اینجوری فهمید چه درد من بخوره ؟ من شرات ویژگی ویژگی های خودم دارم من خودم باید برم. لصات کل تقلی و ا که اصلا آموزه‌های های دائم آموزه‌های های جاابدان الگو های جاابدان تمامش مییرره اصلا بحث خانگی اینو بالکل قبول ندارم. سریع هم گفتن و حت من نیست سری گفتن که نبوت های تجدید بشه مرتب باید کسانی بیان و اومدن. هم. آخرین جمله ای که آیه عبدال کریم و سروش میگه که بعد از پیانبر کسانی آمدن که برای هدایت بشر علاوه برونچ که پیغمبر بود اوردن مثل مولوی، سهروردی، مولا را امام محمد غزاری، آخر بعد میگه مولوی پیانبری بود کتابش دابش مستنگ بود عوالتشم که خیلی قشنگه قبل از مولوی ما با یه بال باید پرواز میکنیم بال ایمان بود که پیغمبر رو مولوی با عشق هم ازابی کرد آنها به درستی کن خب اینجا دیگه مجتهد زبرد است ارز کدم نباقه ما تو حصول و فقه دارن کار میکنند و بیافتن به جون اینا آیات قرآن درد بیرن آیاتی که عشق میگه آیاتی که این مساله میگه این رو درست تشدیف کنن بگیزن در هر صورت نیدوه نیست که ساده سازی با ساده سازی کار بجایی پیش میبره من چقدر یکی؟ خب یه موضوع دیگه رو بگم تمام یکی از مباحثی که هنوز خیلی باز نشده و با روح حساب دارن غربیا کار میکنن و آروم, آروم دارن یه بخششو به کشورای اسلامی سران میکنن بحث علوم شناختی رابطه و اصول فقه با مباحث علوم شناختی ما دوسته مورد داریم که علم نیست علومه. علوم سیاسی میگن، کمتر میگن علم سیاست. علوم سیاسی. علوم تربیتی، اینشم علوم شناختی که مجمعن هفت علم مجموع شده علوم شناختی. اون از مباحث اون که داره تو کشورای اسلام میاد هنوزم انسان بتونه بگیم متخصص توی علوم که واقعا بشه و هر بشه اعتماد کنی. متخصص متخصص شاید نداشتی باشیم ولی دی کار خب اینا جوری که داره وارد کشور ما میشه اون قرائت اول خیلی مهمه اگه جا افتاد بعد ما کل جون بکنیم تو اون قرائت اگه بود درستش کرد در این که میشه استفاده فراون کرد خب یکی از این علوم, علوم شناختی واسه هوش مصنوعی اما اگر از اینها قرائت فیزیکالیستی شد تهران الان پژوهشگاه بود الان پژوهشگاه شد پژوهشگاه سازمان علوم شناختی اشتباه نکنه زیر نظرای این پژوهشگاه کلا در داره قرائت فیزیکالیستی از علوم شناخته دست دست. و این بسیار بسیار خطرناکه. بسیاری از مسائل زیر سوال میره. حالا چون شما رشته تو کلامی هست، من بحثه کلامی وارد نمیشم. ما نبوید معتلش این قرائات اشتباه جا بیفته. بیاد تو کشور، دانشگاه رو ما رو بگیره، بعد اساسه بیاد وارد حوزه ها، باعث کلام درید دیگه. عوزه 30 سال پیش که حالا مدام جواب بگی. و تازه چقدر مهمه که همین کتابایی ما که الان داریم جواب بدیم به چند صفه خودشون اصلا بعضی وقت ما اطلاع ندید ترجمه میشه به کشورهای کرد اون موضوع پنجدی رو که بنده تدوین کردم از شما مقالاته الان توله به دو سه زمان ترجمه شده چون برمیش میشود قواعد خدمت شما از اون شناختی همینطوری خب حوزه الحمدلله نفع خدا حواسش چقدر زودتر زودتر وارد مقاصد چیز شد بحث هوش احساس زیاد اینجا هست که مواسه با و روش شناسی اجتهاده. نمیگم حرفشون درسته، هم بلوف میزنن. این بحث روش مصنعی قوی که دارن میگن من با اون, اون کسانی که تقریبا تخصصای داشتن گفتن هنوز روش مصنعی قوی فقط در حد حرفه. مصنوعی مصنعی یعنی روش یعنی مصنعی که قدرت استنباط داشت باشه. بتونه خودش فهم به قول معروف اجتهاد ولی در این حدش الان هست که شما تمام داشته‌هایی که یک مجتهد نیاز داره این, اینو مثلا فرض که باید به هوش ماشین. هنوز نشده تو خیلی چیز انجام شده. و این رفیق ما آقای دکتر فایازی مهندس ساختمان دیگه پشش با ما هست. ایشون گفت که دوست تا مهندس بودیم نقشه زمین کشیدیم بعد دادیم به هوش ماشین دیدیم اون نقشه که اونقدر قشنگتر از نقشه ما بود. ما گفتیم مهندس. بودیم. تو بعضی علوم خیلی جلو رفت. ولی اگه حالا اومدیم تو بحثای فقه و بحث دینی هم این کردن آروم آروم داده های فقیه همه وارد شد اونجا جوری که هر یک مستند برای استنباط نیاز داره به هوش مصنوعی دادن بعد آیا به اینجا ساده سازی اینه که میگیم بابا اجتهاد ملکه است و کامپیوتر ملکه نداری ملکی اجتهاد خب اول ملکه چیه ملکه یعنی که انسان توانایی داشته باشه این از این داده ها به حکم برسه به فتوا برسه این توانه ای که داره که خود میگه ما الملك چی چی تعریف کنید آیا چیز ساختگی ذهنیه یا نه واقعیت جدا کنید دیگه از همین ابتدا باید ورود کنم تو این مبحث آیا اصلا اجتهاد الگوریتم برداره میشه مثل مبحث تجربی بگیم تمام به قول معروف اون قسول‌ها و همه چیزاشو کنار هم می‌چینیم که هر کی میشه به نتیجه برسه. آیه این جوریه با خوان اشتباه. یا نیست. این علو وظیفه بل فعل امروز ماست که بروت کنه توی مسأله. اگه حرف اون درست باشه کل همه شناسه اشتباه میشه، یه چیز دیگه میشه. حالا دیگه. این مثلا اعلان ماسک الان همین دیگه ادعایشون داره که تمام مثلا 60 تا زبان دنیا رو می‌تونه توی تراشی کوچولو تو مغز بکنه. شما توی لحظه 60 تا زبان بلدید؟ همین رو تو علوم اسلامی و فقه بیاد بیاده بکنه همه اینا رو تو یک خدمت شما از کنم تراش بریزی تو مغز شما 20 ساله شده عالم علما خب الان باید ورود کنیم که حالا این تو شد اون طرف مشتهده یا مجتهد سو خب همه چیز که بلد که تازه همه روایتم هم حاضر داره که با یه اشاره همه جمع می‌کنه آیا میشه مشتهد؟ آیه می‌تونه فتوا بده نمی‌تونه فتوا بده اون داره فتواش نداره اینا مسائلیه که از ترابط از یکی از مسائر فلسطه اصول حصول ترابط علم اصول با سایر دانش راست. و این را بحثا بحثایی بحثا که این بحث روزه این بحث علم شناختی. حالا هرموناتیک خیلی تقریبا که به شما قدیمی داره میشه. ولی این بحث روزه و وظیفه ماست که باید گرود کنیم حرف این آقاییم که خیلی هم حلوفه اگه بارد بشه کلا مسیر اجتهاد داره میره یه مسیر دیگه خواهد خواه سال می جواب بدن یه سلوغات خود <تصفيق> من چون وقت کمه سریع بخونم می فرماد که بایید به مخالفینش اینه حمله کرد ندفاع ولی باید دفاع کنید بعد حمله دیگه ما قبول دارم فرمای شما درسته ولی متاسفان تو دفاع من بودید قبول دارم فرمای شما درسته ولی چه کنیم که هنوز تو دفاع خیلی از شبابات هم بودی؟ برای استقراج به دستیابی فلسفه حلم چه منامه ای را متعلق کرد خصوصه فلسفه مظاف کتاب جای نشد. خودش کتاب خوبیه در تحسیسی بر فلسفه مظاف جزه اول. این چیزاست. آیه خسرو نام کتاب داره تو خصوصه فلسفه مظاف. کتاب جای اینه که وارد تک تک فلسفه‌های متابسه برصف هم شده مسائلشو گفته و کتاب آیه لاریجانی مقدارش که چاپ شده. من اون 7 سالی که ما درسیش رو رفتیم خودش میشه ولی شده شده چاپ شده. کتاب هم کتاب خوبیه. به طور خلاصه تأثیر فلسفه اصول رو در روش شناسی به معنی سرش سرشتها توضیح دهید نمیشه کل بگون یه جا فلسفه اصول باید تک تک مصار وارش که اینجوری تأثیر آیا اصول باید برگرفته از فقه باشد یا فلسفه و کلام از هیچ کدوم بالاخره اصول یه موانی کلامی داره بله ولی بله خب معلولاً تو غربینه که مثلا یه دانشی نوشته میشه بعد روش شناسیش که مثلا اصول باشه، بعد استنباط باشه تو غربیا اینجوریه. اینجا خب همزمان با اصول ما، با فقه ما، اصولم تقریباً بوده از قدیم. همزمان با هم همدیگه رو کامل می‌کنن بالاخره. تراواب هر دو طرفه. جایگاه فلسفه و در پاس و به شباهات روشن شد اون فلسفه موزا بحث کردم پاس و خویب شباهات فلسفه و کردم در استنباد تاثیر داره همینه که گفتم بحثای استنباد تو سه چار مورد. هم فقط سه تا مثال تونستنزه کنن تو این ساعت چند. بله میفرمون شرایط در فهم مؤثر است زمان و مکان آی متحریه میفرمون کسی که وسط بیابان است با کسی که در هتل تهران است تو اران اسبت و بعد های متحری مشت تغییرویین مشتعد دهاتیفت پشتهایه دهاتی. مشتعد شهری و خوشنی در اصل تاأثیر کسی ممکن نیست. بحث که این تاثیرات اجنااب دامپذزی یا که هرون که راهی نداری بر اینکه از تاثیلات فرار کنید. ضا در نتیجه میگه چون فهم شما تابع شرایط تاریخی امروزیه شما هیچ وقت نمیتون مورداد معلف را بفهمید. هیچ وقت نمیتون مورداد قرآ را بفهمید، هیچ فقط نمیتوند مراد پیغمبر را برفرمید. جز مسلمان ترموتیک فلسطیه. ما تو هیچ وقت شرف داریم. بله شرایط تأثیر میذاره. بلیش هم تأثیرش هم درسته. این سعی و ناسعی باید مشتاق با اون ذهن خودش دیگه و قواهی اصول فقه برای همینه که اینا را سم جدا بکنه. می فرمود که مواردی که در فلسفه اصول مطلب میشه همش مختص اصول است یا برای علوم دیگر هم قابل استفاده است. خب آیونی که نظرش اینه که فلسفه اصول چی اصول باید به شتاب گسترش میداکنه طبعا تو فلسفه اصول رو میگن دیگه. خب خیلی از مبادئ اصولی فقط برای فکر نیست، اصول فکر نیست، خیلی جا دیگه هم داره. اما بگیم که الان ما اصول فکر داریم که اصول فهم همه اسلامی باشه نه این اصول فقه ما هنوز کافی نیست که شناسی تمام علوم باشه باید تکبیر میشه اگر ممکن است برای اشنایی بیشتر واحر مدید و هم فلسفه اصول و وقت کتاب معرف میفرمون در قصد فلسفه اصول و وقت ما یه مجموع مقالات داریم تو اجوشگاه چاپ کرده خب مجموع مقالات خوبیه اولش ما مقاله آیت الله عظمان شروع میشه اونجا مقالات خوبی از پیرامون فلسفه اصول اسمشه خدمت شما عرض کنم که دروس هرمونوتیک دو تا کتاب قشیشکا نوشته آقای فیازی یکی هرموتیک روش شناسی اصول و اصول فقه ای که هرموتیک فلسفی و اصول فقه اونجوری تام بات نیست فلسفی هم که خود بنده نقدش کردم که برای اولین بار در هرموتیک فلسفی و صورت روشمند نفت شد اسمش از فهم در دام تاریخی نگری اگه آشنایی با هرموتیک میخوام کتاب آقای فیازی از همه بهتره در آمدی بر علم هرمنوتیکی اونم کتاب خوبه آی احمد باعزی طلبه هم نویشته خب زبونش هم خب دیگه بعد یک سال من نقمیدم نمیخونم اگه برمایش دارید در خدمتی بلندتر فقطی که من گوشم هر <تصفيق> با هم هم متفابط هست این تازه داره بنامه یه دانش مطرح میشه ساختار با هم اختلاف دارن ساختار مسائل اصول چیه اون دوره پنجلی که فهمتان بحث کلامی و بحث فلسف وصول دوره جریان شناسی و نقد اعتصال نوه اندیشای این آقاین رو نقد کردیم بله متفاوته چون خود اصول هم همینطوره ولی بله فلسف وصول بنامه یه دانش نوپا هنوز تو هست این که مثلا ساختارشی داره با هم دعوا هست. آیه هستم فلسفه اصول، فلسفه علمی میتونه بارد نقدم بشه، داوری بشه یا نه؟ این بحثه هست برای. اختلاف هم هست درست هم هست. هنوز هم چیزی دست ما تدوین آیه رشاد هم داره چند جیت مینویسه ولی هنوش کدومه چاپ نشد. خب، اگه فرمایش نیست باز صلوات بر محمد و آل محمد جسد. و کنم من امروز بیشتر سعی داشتم به شما اطلاعات بدم نمیخواستم چیز بسری علمی هیچ جاش نداشت. اصلا خوشگل باشی نه قابل نیست. چی مقاله که فهمون ماشین مقاله اون تجزیه اش راشکا پرنگان بشه. الرحمن ان شاء الله. روی نظر چی؟ به نظر خودت. این من شما حالت خودم دویر همایش بودم هم شما مقاله. تو این همخان اولو